در ره انتهایی که تا نهایت امیر بود از لجنی سیاه و بوناک انباشته بود و ملائک با چهرهایی گرفته و خشمگین در پیرامون آن ایستاده گرمکار بودند ناخشنودی و حراس و خشم از سیما و اتوارشان پیدا بود حالت بیکارانی را داشتند که با اکراه و اجبار خود را وامی دارند تا فرمان ناگزیری را اطاعت کنند. تنها یکی از آن فرشتگان بزرگ بود که از شادی در پوست نمی کنجید. با کنجکاوی شتاب زده ای همه دستها را میپایید پایید. هر لجنی را که ای از آن لجنزار عظیم برمی گرفت وی با نگاهی آشنا در آن می و سپس، لبخندی سرشار از توفیق و نوید بر لبانش میشکفت و سری به نشانه رضایت تکان میداد و گاه از شگفتی قهقهه میزد و مشت بر زانوانش میکفت و بر روی پاهایش به هوا برمیجست و مینشست و بیدرنگ متوجه دستهای دیگری میشد گاه برخی گلها او را از شعف به فریاد میآورد و بر برمیخواست و از شوق بر فراز آن دره پر میکشود و چرخی میزد و سر جایش مینشست منظره وحشتناکی بود بوی گند دنیا را برداشته بود منکه نمیدانستم از کی در گوشه ای از این قیامت شگفتی ها میخ کوب شده بودم و پلک نمیزدم از عفونت هوا به خود آمدم تاب نیاوردم گریختم سر به صحرای بکر و پاک گذاشتم و در قلب شسته و زلال ماورا غرق شدم و در ای از آن فضای مهگون لطیفی که فرسنگها از آن لجنزار دور بود نشستم و به آنچه دیده بودم میاندیشیدم ناگهان از وحشت نزدیک بود دلم پاره شود او را هم از این لجن بدبوی سیاه خواهند ساخت به شتاب پرنده بیپناهی که طوفان میبردش سراسیم می برخواستم و سر به صحرای ابدیت نهادم و سرزمین پاک ملکوت را همه سو میگشتم و همچون دیوانهی هراسان در حالی که اقدهی گلویم را به سختی میفشرد و ناخون گریه هلغومم را میخراشید و چشمانم از عشق میسوخت در هر قدم مینشستم و همچون نابینایی توهیده است که تنها سکه طلایش را گم کرده باشد با چشمهایی که جوشش دمادم اشک عشق تارش می‌کرد بر روی خاک دست می‌کشیدم و بیدرنگ آنجا را رها می‌کردم و خود را به گوشه دیگری می‌رساندم و باز همچنان در جست یافتن خاکی برای گل او زمان بسیاری این گذشت در آنجا نمی‌توان دانست که یک روز گذشت یا یک سال یا یک قرن که خداوند خدا هنوز زمان را نیافریده بود اما میدانم که جست و جو سخت و طولانی بود اما میدانم سراسر آن سرزمین پهناوری را که از ازل تا به ابد کشیده شده بود همچون پرواز خیال همچون گذر تصور دویدم و دویدم تا رسیدم به پای کوهی مغرور در ساحل دریایی که عاشقانه موج میزد، کوهی از نقره خام ایستاده بر بردامنش بنایی به گونه آتشکده کهن همچون قصرهای افسانه معبد پریان خاموش در قلبش شمعی تنها میسوخت و در کنارش برجی همچون خیال برکشیده تا سینه ملکوت احساس کردم اینجا بوی یاری میرسد. همه رنگ ها با من آشنایند هر موجی که از سینه دریا برمیخیزد به سوی من پیش می‌آید و برایم پیامی در ساحل می نهد و باز میگردد. جاذبه این مرموز دل مرا به این سرزمین میکشاند. هوا عطری به مشامم می‌ریخت که گویی دیری نگذشته است که او از اینجا گذشته است بوی گل صوفی در فضا پراکنده بود سکوت بود و سخن بود هنوز نقش وجودی نبود اما طرح دوست داشتن بر سینه ادم نقش شده بود گویی بندی نامرئی پای دل مرا به اینجا بسته است دل مرا با این سرزمین کاری هست همینجاست گل او در همین جاست، باید به بو دریافت همچون پیغمبر در پایان هجرت که افسار ناغی سرنوشت را برگردنش افکند و او را رها کرد تا خود آن نقطه ای را که باید مسجد گردد و پناه اسلام و فرودگاه وحی و کانون زندگیش قلب همه احساسها و سرچشمه آغاز تاریخ فردا و جایگاه دگرگونی جهان و فرو مردن آتشهای دروغین و فرو ریختن کنگره قصرهای کج سلاطین و فرو شکستن شکوهای بیروح و درخششهای بینور تا او که کارگزار تقدیر بود خود انتخاب کند. من نیز زمام دلم را از دست تدبیری که در آنجا کاری نمیتوانست کرد گرفتم، و بر سرش افکندم و خود را به او سپردم و او بر آن سرزمین که بلایت روح بود و کشور زرین اشراق و فرسنگ ها در آن سوی فهمیدن می رفت و من در پیش تسلیم این تقدیر دلخوا می رفتم. راهی پر پیچ و خم اما هموار و نرم را پیش گرفت و چنان آرام و بیتردید میرفت می رفت که احساس می کردم زمامش در دست های است که سرنوشت آدمی کار اوست و سرشت آفرینش شاه او نسیمی نرم و مهربان از دور دست آن دریا به سوی دشت میوزید و چهره مرا مینباخت همچون نفس فرشتگان همچون روح لطافت همچون خاطرهٔ عشق پاک چون تقوا زلال چون دوستی و شاد چون امید و نوازشگر چون مژده چه بگویم نسیمی که هنوز در روحم میوزد و آن دنیا را در گوش دلم مدام نجوا می کند. ناگهان ناغه در نقطه ای استاد نگریستم توده اندک خاک نرم و پاک پشت آن قصر پای آن برج همچون گرد نرمی که وزش دائمی نسیمی که در کبیر می وزد. پای برج های بلند گوشه دیوارهای امامزادهای امامزادهی بر سر کوه کنار گل دسته مزار مجهول و افتاده ای در دور دست صحرا خمه از یاد رفته کوهی دور از راه جمع می کند مشتی خاک نرم همچون تن قاصدک طلایی همچون آفتاب پاک همچون صبح و خوب همچون همچون خودش اما توده خاکی که نیمی از پهلوی راست آن را پیش از این برداشته بودند تمام جانم را دامن کردم و آن مشت خاک را برداشتم چنان که یک ذرهش بر جا نماند چنان که یک ذره خاک دیگری با آن نیامیزد، به شتاب خود را به آن کارگاه عظیم خلقت رساندم در میان فرشتگان گشتم و گشتم تا روح را که از همه فرشتگان خدا خوبتر و مهربانتر و مقدستر است. همان که خدا در قرآن همه فرشته ها را یک جا و او تنها را یک جا در برابر همه نام میبرد همون که وقتی مردم از او میپرسند خدا به پیغمبر میگوید به آنها بگو که روح از عالم امر من است. فهمهای شما. پستر و تنگتر از آن است که او را بشناسید دیگر از او مپرسید دامنم را که پر از او بود در برابر روح گرفتم و با سکوتی که از التماس لبریز بود کنارش ایستادم دستهایش را که از روح مهربانی سرشته بودند و انگشتانش را که هر یک الهه هنری خدایی بود پیش رویم آورد و بر لبه دامنم گرفت و او را در دستهای وی ریختم و در نگاهش خیره شدم لبخند و مهر و دلسوزی و نوازش و اطمینان موج میزد با چهرهای آرام و اندامی شکسته در زیر فشار محبتی این همه سنگین اندک اندک کنار رفتم همچون کسی که مأموریتی را انجام داده است بی قرضانه و معصوم وار از آنجا که او بود دور شدم که تحمل حضور را نداشتم و از سنگینی بودن با کسی که بودن با او دشوار بود به آسودگی گریختم گریختم تا آزاد و راحت به او بیاندیشم لذت قید بودن با دلخواه را در رهایی تنهایی بردن است لذت های اپیکوری را به لذتهای اپیکور بدل کردن است با او بودنی بی اوست قرغه در چونین تنهایی انبوه خلوتی سرشار و معطر و در پرواز بر فراز دشتهای بیکران و افقهای بیرنگ خیالی رنگین و موفق ناگهان وحشتی مرا از جا پراند و چنان پریشانم کرد که از تنهایی آرام و لبریزم حراسان گریخت. اما خاک او را با چه آبی گل خواهند کرد؟ با همین آبهای افن و ناگووار؟ نکند از این مرداب سیاه و آلود برگیرند. ترسیدم: این آدمها را با آب حوز آب لجن گرفته تهجوی های راکت قدیرهای گند گرفته لوش فاضلا حمام سرشتند. ترسیدم یک سعت از آن بردارند و آن خاک را گل کنند نگذاشتم حتی از آب تصویه شده آب مغتر هم نگذاشتم قبول نمی کردند. گفتم ای فرشتگان زیبا مقدس ای کارگزاران ملکوت پرندگان عزیز عرش اعلا به انایت شما نیازمندم سخت نمی خواهد شما به زحمت بیفتید من خودم میروم و آب میآورم. فقط از شما با همه وجودم، با همه نیرویی که در همه نیازها خواستنها، دعاهای همه دلهای محتاج، همه کبیرهای تشنه، همه تموزهای داغ هست، می خواهم که قبول کنید. به اندازه نیاز و التماس در لحن صدایم، رنگ چهرم، تمام وجودم موج می زد که دلشان نرم شد. سکوت کردند و من همچون مجد از جا جستم و ظریف جام بلورینی را که نازکی و لطافت خیال معصوم طفلی در آغوش افسانه پریان را داشت و در زیر پوست انگشتانم لمس نمیشد از پیشگاه خدا برگرفتم و همچون تند باد سر به صحرای قید نهادم و رملستان بی انتهای عالم زر را بشکافدم و رفتم, و رفتم و رفتم و رفتم و بر سر دیواره مشرق پریدم و از نردبان سپیده صبح آفتاب عشق بالا رفتم و بر بام طلوع برامدم و سر در سینه نور فرو بردم و فرو رفتم و گم شدم آنجا دیگر هیچ کس نبود هیچ کس چقدر روح محتاج فرصت هایی است که در آن هیچ کس نباشد تنها در این حالت است که هیچ بودنی بودن تو را در قالب هیچ چگونگی مقید نمی دارد و این آزادی بیمرز و شورانگیزی است یک نوع از سنگینی و جرم وجود به سبکی و تجرد ماهیت خیش بازگشتن است تلقی ها و شناختنها و فهمیدن های دیگران آدمی را شکل می دهند. همه می پندارند که هر کسی آنچنان فهمیده می شود که هست، اما نه آنچنان که فهمیده می شود هست. به عبارتی دیگر هر کسی آنچنان است که احساسش می کنند. نه آنچنان احساسش می کنند که هست. و من در اینجا در آن خالی مطلق. آن سوی مرز عالم ماورا خود را چنان احساس کردم که دیگر هرگز تجدید آن برایم ممکن نیست از آنکه همیشه دیگری است که من را پدید می‌آورد خود را مطلق یافتن وجود مطلق را یافتن هر دو یکی است تا جاذبه زمین هست هر کسی محدود به وزنی خاص خیش است وزنی که جزئی از ذات و بعدی از بودن خود اوست در آن سوی جاذبه در بیوزنی یکی از حدهای همیشگی جوهر آدمی محو می‌گردد. از این سو من به بی نهایت می رسد. مطلق را احساس می کند. اگر از همه سو همه حدها همه این ماهیتهای اعتباری و نسبی که اکنون با چگونگی یا چگونگی هایی که عین ذات من ماست درآمیخته است ناگهان غیب شود من به مطلق میرسد. بودن من از همه چارچوب هایی که من را بودن دادند و آن را در خود می فشرند و خفقان و استراب و آرزوی ناخداگاه گریز و عشق فراری که در عمق سمیمی و پنهانی فطرت ماخانه دارد از آن است، آزاد گردد، من مطلق می شود و در این دیالکتیک شگفت روحانی که کشف شورنگیز شرق حکیم است، انسان به خدا رجعت می کند و روح سامسارایی، از گردونه رنج زای کارما به خلود روشن و آرام نیروانا می آرامد و معشوق عاشق خیش را که از ماهیت خود پوست افتکنده و در رهایی دردآور نمیدانم چگونه بودن آواره است در آغوش وجود خیش میکشد و معجزه الیناسیون عرفانی سر می زند و من با نفی خیش خود را می و آن من که به گفته جامعه شناسی مخلوق دیگری است خود خالق می گردد و به ذات می شود و دیگری خیش را خلق میکند کند آیا حرف ودانتا همین است که آنگاه من به آتمان رسد من منها و به آتمان برهمن به گردد روح روحها روح جهان چه میداند